تفهه 143 به همین دلیل خلیفه به وزیر اعظم دستور می‌دهد که بردر در جفر میگوید می‌گوید به نظر من درست نیست که در این هنگام مزاحم آنها شویم. زیرا کار خلافی نکردند و مشغول تفریح در داخل خانه خود هستند. برلاوه این خنده های بلند و شادی نشانه مستی آنهاست که از بادی ناب سرهایشان گرم شده است. اگر آنج خلیفه پرسش‌های از آنها کنید ممکن است از روی مستی بیحرمتی نشان دهند که آن هم مصلحت نیست. خلیفه میگوید: با همه اینها من میخواهم وارد این خانه شوم. در بزن. جعفر بناچار برای بار دوم با شدت چنگ و بر در سرانجام صفیه در را باز کرد. جعفر در زیر نور چراقی که صفیه در دست داشت، چشمش به خانمه بسیار زیبایی افتاد که در تمام عمر خود زنی به این زیبایی ندیده بود. جفر نیمه تضح می کرده وودبان گفت مزرت میخوام که در این موقع شب بزم شما را به هم زدم ما سه تاجر از شهر موسل هستیم که به این شهر آمده و کالاهای های خود را در کارلوان سرایی که در همانجا منزل کردهم جا داده ایم. مال و تجاره بسیار گرانبههایی داریم که باید بفروشیم. امشب یکی از بازرگانان بقداد ما را به میهمانی دعوت کرده بود و در آنجا در نوشیدن زیاده روی کردیم. میزبان ما گروهی از نوازندگان را برای سرگرمی و تفریح ما دعوت کرده بود و آنها هم بزم پرشور و پرصدایی راه انداختند و در نتیجه سر و صدای بلند و هیاهوی ساز و آواز داروقه شهر با معمولین خود به میزبان ریختند و همه را برای بازجویی دستگیر کردند خوشبختن بخت با ما یاری کرد و ما شنفرد توانستیم از روی دیوار فرار کنیم در حال فرار صدای ساز و آوازی که از خانه شما بلند بود توجه ما را جلب کرد اگر به ما اجازه ندهید که امشب را با شما باشیم ممکن است گرفتار مأمورین گرد شویم و یا آنکه در پشت دروازه شهر تا صبح بیدار بمانیم زیرا در این ساعت دروازه را بسته اند و دروازه‌بان در خواب به میبرد. می‌برد چه اجازه فرمایید ما در بزم شما شرکت جوییم با هنرنمایی خود مجلس شما را گرمتر خواهیم کرد وگرنه فقط در گوشه ای استراحت خواهیم کرد تا خورشید طلوع کند و اگر اجازه دهید در همین حال خواهیم خوابید. در مدتی که جعفر با صفی صحبت میکرد صفی همزی چشمی قیافه و ظاهر دو بزرگان دیگر را کاملا ورانداز کرد و بعد با لحن دوستانه و ملایمی میگفت چون من بانوی خانه نیستم، اگر چند لحظه اجازه فرمایید با خانم خانه صحبت کنم و نتیجه را به شما اطلاع دهم." صفیه با دو خواهر خود صحبت کرد، آنها تردید داشتند که این سه بزرگان را بپذیرند ولی چون اشخاص نیکكرداری بودند و قصدشان کمک به نیازمندان بود سرانجام رضایت دادند که این سه نفر هم مانند سه درویش شب را در آن خانه بگذرانند خلیفه و جعفر و مصرور توسط صفیه زیبا به خانمها معرفی شدند و آنها با فرود آوردن سر بنشانی احترام به خانمها می کردند، و خانم ها هم در مقابل آنها احترام کردند و رفتاری معدبانه نشان دادند زبیده که تصور میکرد آن سه نفر بازرگانند رو به آنها کرد و گفت خیلی خوش آمدید ولی قبل از هر چیز تقاضایی از آقایان داشتم جفر گفت آن تقاضا کدام است بفرمایید تا آن را انجام دهیم زبیده با صدای موقر خود که لحن عادی او بود گفت شما باید ببینید و نپرسید یعنی آنچه چرا که در این خانه خواهد گذشت فقط تماشا کنید ولی حق ندارید دلیل آن را بپرسید و چنانچه درباره هر موضوعی که مربوط به شما نیست پرسشی بکنید جوابی به شما داده خواهد شد که موجب پشیمانیتان خواهد شد جفا پاسخ داد بانوی من ما فقط عوامل شما را اطاعت می کنیم. ما مردم فضور و کنجکاوی نیستیم و کاری به کارهای شما نداریم و هر کاری که بکنید ما فقط تماشاگر خواهیم بود بدون که هیچ گونه مداخله ای داشته باشیم پس از این گفت‌وگو خلیفه و دو همراه او به جمع بانوان پیوستند و سایرین به سلامتی تازه واردین جام‌های خود را که لبریز از شربت بود نوشیدند در مدتی که جعفر مشغول صحبت با خانمها بود خلیفه محف تماشای این بانوان زیبا بود و صورت قشنگ و رفتار و گفتار مؤدبانه‌ی آنها و سخنان سنجیده و نغزه آنان بقصد تضییع بود که تحصیل خلیفه را به خود جلب کردند بدوجه بی حاضر جوابی و زیبایی فوق‌العاده‌ای آنها که دل خلیفه را ربوده بود موضوع دیگری که خلیفه را در شگفتی فرو برده بود نابینایی سه از چشم راست بود چنانچه خلیفه کرده بود درباری هرچه میبیند می‌بیند سؤال نکند به راحتی از راز این سه آگاه شود ولی این امکان از او و همراهانش گرفته شده بود این مطلب و شکوه منزل و نظم و ترتیبی که در هر در این خانه دیدی میشد شد با سلیغ و زیبا بود و پاکیزگی فوقلاده خانه خریفه را برانداش که فکر کند این خانه بر اثر جادو به وجود آمده است در این بزم دلپذیر که همه سرگرم تفریح و لذت بودند و هر به نحوی همکاری خود را نشان می داد سه هم به پا خواستند و رقص مخصوص دراویر را شروع کردند این رقص زیبا موجب شد که نظر خوب بانوان جوان نسبت به این سه درویش تقویت شود و در نظر آنها و همچنین در نظر خلیفه مورد احترام بیشتری قرار گیرند. همین که درویش ها رخصشون پایان آمد، زبیده از جای خود برخواست، دست امین خواهر خود را گرفت و او را از جایش بلند کرد و گفت خواهر: میهمانان ما بعدشان نخواهند آمد اگر ما به کار خود بپردازیم و اینک وقت آن فرار است. امینه که منظور خواهرش را درک کرده بود فرنگ کلیه ظروف و بطری ها و امزار و آلات موسیقی را برداشت و همه را در سوی دیگر تالار جمع کرد. صفیه هم بیکار ننشسته بود. او هم تالار را نظافت کرد و هر چیزی را با نظب مخصوص در جای خود قرار داد. و شامها را خاموش کرد و دوباره روی شمها انبر و اود گذاشت و از درویش خواهش کرد که در قسمت شاهنشین تالار بنشینند. و از خلیفه و همراهانش نیز تقاضا کرد و در سمت دیگر بنشینند. بعد از باربر خواست که در کاری که میخواهد انجام دهد به او کمک کند و به او گفت تو در حکم اهل خانه ای و نباید بیکار و بی حرکت بنشینی. باربر هم که مستی تا حدودی از سرش پریده بود، بلافاصله به پا خواست و های گشاد لباده‌ی خود را بالا زد و آماده خدمت شد. سفیه گفت: بسیار خوب، آماده باش تا به تو بگویند چه کاری باید انجام دهی. چند لحظه بعد امین وارد تالار شد در حالی که صندلی را در دست گرفته بود و به وسط تالار رفت و آن را در وسط تالار روی زمین گذاشت و به باربر گفت بیا با من به آنجا برویم آنگاه به اتفاق باربر به اتاقی که در گوشه تالار بود رفتند بعد از لحظه‌ای بیرون آمدند و دو ماده به همراه خود آوردند که به گردن هر کدام قلاده و زنجیری بسته بودند و به نظر می رسید که سک ها را قبلا تا زیانه بسیاری زدند آنگاه زبیده با قدم های سنگین از میان درویش ها و خلیفه به سوی باربر رفت و با آهی که از سینه برکشید آستین ها را تا آرنج بالا زد و گفت باید کار من را شروع کنیم در همین لحظه صفیه هم ترکیه به دست زبیده داد و زبیده به باربر گفت سگ دیگر را به امین خواهرم بده و این یکی را هم ببند باربر به همان ترتیب رفتار کرد و سگ زنجیرش در دست باربر بود، شروع به گریستن نمود و میخواست به سوی زبیده برود و سر خود را به حالت التماس‌آمیزی بالا نگه داشته بود. ولی زبیده به صورت قنگین سگ اصلا توجهی نکرد و به گریه او بی اتنای نشان داد چهره اندوخین سگ دل هر بیننده را به رحم گریه سک سگ به صورت فریادهای فضای خانه را پر کرده بود، کمترین اثری در زبیده نکرد. و او همچنان حیوان را با ترکی میزد. آنقدر او را کتک زد که دیگر نیرویش به پایان رسید و از نفس افتاد و دیگر نمی توانست به کتک زدن حیوان ادامه دهد. آقا زبید ترک را به سوی پرتاب کرد و زنجیر حیوان را از دست بار برگرفت و با هر دو دست پاهای سگ را چسبید و آن را از روی زمین بلند کرد و لحظاتی چند با چشمانی افسرده به چشمهای حیوان نگاه کرد. و هردو به گریه افتادند و بعد از آن زبیده با دستبان خود اشقهای حیوان را پاک کرد و او را بوسید و زنجیرش را به دست باربر داد و گفت حیوان را جایی خودش برگرداند و سگ سیاه دیگر را پیش او بیاورد باربر حیوان خورده را به جای خود برگرداند و حیوان دیگر را از امینه گرفت و نزد زبیده آورد زبیده به باربر گفت حیوان را محکم نگه دارد آنگاه را برداشت و شروع به زدن آن کرد و به همان ترتیب قبلی وقتی از زدن خسته شد حیوان را بغل کرد و اشقای او را با دستمال خود پاک کرد و آن را بوسید و به دست بار بر سپرد ولی این بار امینه که دلش سوخته بود خودش این زحمت را بر گرفت و حیوان را به جای خود هدایت کرد خلیفه و همراهان و سدر ویش و بارور که شاهد این صحنه بودند غرق در حیرت شدند و به هیچ وجه قادر نبودند که بفهمند چه رازی در این رفتار زبید نهفته است حس کنجخابی آنها به قدشی تحریک شده بود که حدی آن متصور نبود هرچه فکر می‌کردند که چرا بیرخمانه حیوانها را آن همه تازیانه میزند؟ بعد هم آنها را میبوسد فکرشان به جای قط نمی‌داد. گریه کردن زبیده و سرکا با هم پاک کردن عشقهای آن دو حیوان و بعد بوسیدن صورت آنها موجب شد که خلیفه و همراهان به کنکاش بین خود بپردازند چه کسی بود که طاقت و تحمل خود را به کلی از دست داده بود و جفر دائما او را به صبر و وفای به عهد خود در مقابل خانم ها دعوت میکرد. ولی خلیفه که از رفتار غیرعادی و خار آنها آنها زده بود، مرتب با اشاره سر و چشم از جفر میخواست که از خانمها در این بار پرسشهایی بنماید وزیر هم سر خود را به سوی دیگر برمیگردانید تا با نگاه ها و اشارههای خلیفه روبرو نگردد سرنجان جعفر از دست خلیفه و تاغتی او به تنگ آمد و به او گفت: هنوز وقت آن نرسیده است که خلیفه خود را تسکین بخشد. زبید ساکت و بی حرکت مدتی در وسط تالار، همان جایی که سکار تازیان زده بود نشست تا خستگی‌اش برطرف شود. در این موقع امینه بانوی زیبای جوان به او نزدیک شد و با ملایمت گفت: جان ممکن است شما به جای اصلی خودتان برگردید، تا من هم به کار خودم برسم؟ زبیده پاسخ مثبت داد و در قسمتی از تالار که از سطح آن بالاتر از سطح تالار بود نشست و خلیفه و همراهان در سمت راست او و صدرلیش و باربر در سمت چپش نشستند بعد از آنکه زبیده در جای مخصوص خود جای گرفت همه برای مدت کوتاهی سکوت کردند تا بالاخره صفیه روی صندلی خودش در وسط تالار نشست و خطاب به امین خواهرش گفت از تو میخواهم برخیزی مینا که مفهوم خواهش خواهر را می‌دانست، از جایش برخاست و به اتاق خلوتی که در گوشه تالار بود رفت و بعد از چند لحظه در حالی که جبهه را هم می‌کرد که پوشیده در پارچه زرد ابریشمی و زربافتی بود که روی آن با رشته‌های طلا گلدوزی شده بود، نزدیک زبیده رفت و از داخل آن جبه عودی را بیرون آورد و شروع به نواختن کرد. نقبه دلنگیزی را آغاز کرد و هماهنگ با آن با لحن شیرین و گیرای خود آوای سر داد که خلیفه و همه کسانی که در آنجا بودند در حال هوای شاعرانه فرو رفتند ترانه‌ای را که او میخواند درباره اندوه و غمی بود که در جدایی از معشوق به عاشق دست میدهند. پس از نواختن عود و خواندن ترانه‌ای عاشقانه که همراه با سود و گداز عشق بود صفیه اود را به امینه داد و گفت خواهر دیگر نیرویی ندارم این را بگیر و خود ادامه بده. امینه با داد با کمال میل و عود را از خواهرش گرفت و به جای او روی صندلی نشست و چند لحظه ای اود را امتحان کرد تا بفهمد کوک مناسب دارد یا نه. پس از آن که از این جهت مطمئن شد، همان ترانه‌ی آشقانه را دنبال کرد. منتها با چنان سوزی که احساسات عمیق خود و اندوه درونش را با عدای کلمات ترانه منتقل کرد و آنچنان تحت تاثیر نقمی عود و کلمات از دل برخواسته خود قرار گرفت که از حال رفت و دیگر یاروی نواختن و خواندن نداشت زبیده که میخواست رضایت خود را نسبت به امینه بیان کند گفت خواهر تو نشان دادی که واقعا دو چارقم بزرگی هستی که به طور وزوح آن را آشکار ساختی امینه آنچنان شوریده حال بود که نتوانست از خواهرش تشکر کند و احساس میکرد قلبش گرفته است. به اختیار و ناخواسته در جلوی چشم همگی سینه خود را باز کرد تا راحت‌تر نفس بکشد به طوری که گردن و سینه های او نمایان گردید و هیچکس چنین حرکتی را از او انتظار نداشت سینه او از لکه های سیاه پوشیده شده بود و همه کسانی که آن را دیدند ناراحت شدند امینه با این حرکت هم حالش نمی آمد و از حوش رفت و حوش شد و نقش بر زمین شد وقتی زبیده و صفیه برای یاری امینه شتابان به سوی او رفتند یکی از درویش ها گفت: «ایک شب را در کوچه خوابیده بودیم و شاهدی چنین هایی نبودیم.» خلیفه که سخنان درویش را شنید و به سوی او و درویش دیگر آمد و گفت: معنی این حرکات و سخنان چیست؟» آنها گفتند: «ما هیچ طلایی نداریم و نمیدانیم که در اینجا چه میگذرد خلیفه گفت: «چه گفتید؟ شما می‌گویید که با این خانم‌ها نسبتی ندارید و سرگذشت دوسگ سیا و بی‌خود شدن آن خانم جوان هم چیزی نمی‌دانید؟» درویشها پاسخ دادند ای مرد بزرگوار این اولین بار است که پای ما به این خانه رسیده است نه ما این ها را قبلا دیده بودیم و نه از سرگذشت آنها و آنچه تا این ساعت در این خانه گذشته است آگاهی ایم. اطلاع ما در حد اطلاع شما است فقط ما چند دقیقه جلوتر از شما به این خانه وارد شدیم سخنان سدروی شگفتی خلیفه را به نهایت رساند و گفت ممکن است چنین باشد که شما میگویید و نگاه خود را به سوی باربر متوجه ساخته و گفت: درباره‌ی این شخص چه می‌گویید؟ یکی از درویش ها با انگشت خود باربر را به نزد خلیفه وسایرین سایرین طلبید و گفت: تو می‌دانی چرا آن بانو این سکارا می زند و آنگاه آن را در آغوش نوازش می‌کند و آیا می دانی چرا در روی سینه و گردن آن بانوی دیگر آن همه های سیاه و بنفش وجود دارد؟ باربر گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که من هم مانند شماها از موضوع کاملاً بی‌اطلاع‌ام. درست است که من اهل این شهرم ولی تا امشب به این خانه نیامده بودم و اگر شما از حضور من در این خانه تعجب میکنید شگفتی من هم از دیدن شما در این خانه کمتر از تعجب شما نیست و آنچه چه مرا بیش از هر چیز دیگر به حیرت میآورد، آن است که در این خانه اصلا مردی وجود ندارد خلیفه که تا حالا تصور میکرد باربری که از خویشان خانم هاست وقتی فهمید چنین نیست رو به همه کرد و گفت ببینید ما هفت نفر مرد هستیم و آنها سه زن بیشتر نیستند من دیگر تابه تحمل و شکیبایی ندارم پیشنهادم این است که اول با زبان خوش و ملایم از این ها بخواهیم پرده از راز خود بردارند اگر در انجام خواهش ما مقاومت نشان دادند آن وقت به زور آنها را وادار به اعتراف کنیم جعفر وزیر با این پیشنهاد مخالفت کرد و چون میدانست درویشها و باربر خلیفه را در لباس مبدل نمیشناختند و به خلیفه گفت ببینید ما سه بازرگان هستیم که به این شهر آمدیم و باید از عواقب عمل خود بترسیم و این روشی که میگویید شهرت و که ما را به خطر می به علاوه این خانم ها با ما شرط اند که فقط تماشایی باشیم و درباره آنچه چه می‌بینیم سؤالی نکنیم و آنها هم با این شرط ما را راه داده و پذیرایی کرده‌اند چنانچه برخلاف شرط رفتار کنیم پشیمانی به بار خواهیم آورد حکم مجددا خلیفه را به گوشه‌ای کشید و آهسته در گوشه او گفت قبله عالم تا چند لحظه دیگر شب پایان میرسد و خلیفه چند لحظه دیگر هم بردباری و شکیبایی خود را حفظ کنند تا من فردا آنها را به نزد شما بیاورم و هر چرا دلتان میخواهد از آنها بپرسید گشت سخنان وزیر منطقی و معقول بود ولی خلیفه آن را نپسندید و گفت بس است بیش از این گستاخی مکن من نمیتوانم تا فردا صبر کنم و همکنون باید همه چیز بر من روشن شود. مشکل بعدی این بود که چه کسی باید این پرسش را از این خانمها به عمل آورد. خلیفه معتقد بود که بهتر است درویش‌های را انجام دهند، اما آنها زیر بار نرفتند و همه توافق کردند که این کار را به بار باربر بگذارند. و همین که مشورت میکردند که چگونه پرسش خود را مطرح سازند، زبیدی که از خوشاوردن امینه فراغت جست بود، به نزد آنان بازگشت. و او که سخنان آنها را شنیده بود با احلاق مندی از آنها پرسید درباره چه موضوعی این همه با هم گفتگو میکردید باربر بدون منطلی گفت ای بانوی بزرگوار آقایان به من معمولیت دادند که از شما بپرسند چرا شما سگها را اول تازیانه زدید آن هم آنطور بیرحمانه بعد آنها را ناز و نوازش کردید و در آغوش گرفتید و چرا آن بانویی که بیهوش شد سینه و گردنش این همه لکهای سیاه و داشت با شنیدن این سخنان زبیده بروشفت و با قیافه خشمگین رو به خلیفه و سایرین کرد و گرسید آیا این مرد درست میگوید؟ همه آنها بهجز جفر برمکی گفتند آری جفر همچنان خاموش و آرام ایستاده بود آثار نفرت و خشم در سخنان زبیده کاملا نمایان بود او همچنان خشمگین بود و گفت با شما ها شرکندم که را میبینید در باره از نکنید و چیزهایی که میبینید و مربوط به شما نیست فقط به دیدنش اکتفا کنید و درباره آن گندکاوی نشان ندهید شما هم شرط ما را پذیرفتید و قول دادید ما هم تا آنجا که میتوانستیم از شما پذیرایی کردیم شاید نرمش و مدارای ما شما را اینگونه گستاخ کرده است ولی مهربانی ما نمیتواند دلیل گستاخی شما باشد زبیده همین که سخنان خود را پایان داد پای خود را سه بار محکم بر زمین کوفت با چندین بار دستهایی خود را به هم زد و فریاد کشید بشتابید. با گفتن این سخنان ناگهان هفت مرد سیاه پوست دراششندان و قویه کر با قامتی بلند و ضلاتی ورزیده چون های بیشا خودم از دری بیرون آمدند و در حالی که هر کدام سرتونی در دست داشتند هر کدام به سوی این هفت دفر آمدند و آنها را رو روی زمین خواباندند و کشان, کشان آنها را تا وسط تالار آوردند و می‌خواستند سر آنها را از بدن جدا سازند. خلیفه از شدت درس کاملا خود را باخته و پشیمان بود که چرا گوش به اندرز وزه نداده است ولی افسوس که دیر متوجه این مطلب شده بود. او و همراهانش مرگ خود را نزدیک میدیدند که یکی از مردان سیاه پوست با صدای بلند رو به زبهده و دو خواهر او کرده گفت: ای سروران ما اجازه می دهید که سر از تن اینها جدا کنیم؟ زبهده با سخال س تا ببینیم تقصیر با خدا از این چند نفر است در همین لحظه باربر سخن زبیده را قطع کرده و گفت ای بانوی مهربان من بیگناهم و مرا قربانی خشم خود مکن من گناهی نکردم فقط پیغامآور اینها هستم اگر اینها به عهد خود وفا نکردند آنها را مجازات کن نه من در خدمت شما بانوان مهربان حالت خوب و خوشی داشتیم و در منطقه های شادی از بزم خودمان لذت میبردیم که این سه درویش یک چشم مزاحم ما شدند و جشن ما را برهم زدند به خدا قسم من بی گناهکار گناه اصلی همین دردیش هستند، اینها در هر کجای دنیا بروند، قدم نافرخانده آنها آنجا را تبدیل به زیرانه ای می کند. من از بانوی بزرگوار میخواهم که بی گناه را به خاطر گناهگار کیف ندهید، در عفل است که در انتقام نیست، به خصوص در مورد کسی که گناهی هم نکرده باشد، من آدم سادلوهی بودم که پیغام این گناهکاران را به شما رساندم، سویبه با وجودی که بسیار خرسین بود، ولی از سخنان باربر خندهاش گرفت، اما به روی خود نیاورد و بدون آنکه به او پاسخی بدهد، برای دومین بار به سخن آمد و گفت: شماها کی هستید؟ اگر از خودتان به درستی و راستی صحبت نکنید، همه را از دم تیخ خواهم گذراند و یک دسته اجازه نمیدهم که زنده بمانید. فکر کنم شما مردم راستگویی باشید و افرادی نیستید که به عهد و پیمان خود پایبند باشید. اتاً بزرگزاده هم نیستید و دارای منزلت و مقامی هم نمیباشید و در کشورهای خودتان باید افراد گمنامی باشید. اگر غیر از این بود به پیمان عهد خود احترام میگذاشتید و برای حرف خود احترام قائل می شدید. خلیفه که طبعاً صبر و خود را از دست داده بود با این سخنان بیشتر بیتاقت شد ولی در اینه میدید می دید که زندگی او بسته به یک کلمه دستور این بانو می باشد. و پیش خود نور امیدی در دلش درخشید که در برابر پرسش این بانو خود را معرفی کند، شاید بدین این ترتیب جان خود را از خطر مرگ برهاند. در این موقع خلیفه که در کنار وزیر روی زمین دراز کشده بود، آهسته و نیت خود را به وزیر گفت. وزیر به مخالفت کرد و گفت، اگر چنین حرفی بزنید، آبرو و حسیت خود را خواهید ریخت و در نزد تمام مردم اعتبارتان را از دست خواهید داد. بعد اضافه کرد آنچه که اکنون بر سر ما میآید سزاوار آن هستیم. اگر عهد شکنی نکرده بودیم، به چنین مصیبتی هم گرفتار نمیشدیم مزی می‌خواست که برای حفظ جان خلیفه که او را سرور خود می‌داند، سخن بگوید. اما در همین واقعیت زبیدی متوجه شد در کردید که هر از لحاظ قیافه ظاهری و داشتن فقط یک چش به یک تگر شبیه‌اند. باها گفت: آیا شما سه نفر با هم برادر هستید؟» یکی از درویش جواب داد: خیر، بوی بزرگوار. من چشم راست خود را بر اثر اتفاقی ناگوار از دست دادم و چه بر سر من آمده است در کتابی نوشته شود، درس عبرتی برای هر بشری خواهد بود و بسیار آموزنده است. بعد از این اتفاق، ریش، موی سر و عبایانم را تراشیدم و خود را به شکل درویش درآوردم تا با این قیافه ظاهری همه مرا درویش تصور کنند و لباس درویشی هم بر کردم. زبیده از دو درویش دیگر پرسش کرد آنها هم اینن همان پاسخ درویش اولی را دادند درویش سومی جمعه اضافی تر بیان داشت و آن این بود که گفت ای بانوی بزرگ ما هر سه نفر پسران سه پادشاه هستیم که برای نخستین بار شب گذشته دست تقدیر ما را به یک دیگر با هم رو برو کرده است و از دیشت تا به حال فرصتی دست داد که خجا به یک دیگر بشناسانیم و که دران ما سه نفر در همه جای شهر به دنبال ما میگردند دروشین را گفت تا بانوی خانه بداند که آنها افرادی عادی نیستند و در این حال بیشتر رعایت حال آنها را بنماید زبیدی با در این سخنان تا اندوزهای خشمش فرو نشست و تقریبا کنجکاوی جای آن را گرفت و بلافاصله به مردان پوست دستور داد فعلا آنها را آزاد بگذارید تا سرگذشت خود را برای بازگو اما شماها در همینجا باشید من منتظرم که ماجرای آنها را بشنوم ولی هر هرکدام که سرنوشت خود را نگوید جان خود را از دست خواهد داد در این موقع خلیفه و همراهان وسط و سترگیش و بارور بر روی گلیمی در حضور سه بانون روی زمین دراز کشیده بودند و مردان سیاه هم ساتور به دست آماده اجرای فرمان زبیده بودند و بالای سر آنها ایستادند باربر اولین کسی بود که برای رهایی جان خود به دست و پا افتاد و داستان خود را شرر داد او گفت من مرد باربری هستم و امروز در بازار برای باربری رفته بودم خواهر شما این بانوی زیبا مرا به خدمت گرفت و سبد مرا از آذوقه ام و به این خانه آورد و از آن لحظه به بعد هم که خودتان شاهد ماجرا بودید بنابرای من گناهی نکردم و از اوجکی هم که به من داده ای سپاس گذارم. این بود سرگذشت من سوبید گفت بسیار خوب از اینجا دور شو و برو و دیگه همین طرف‌ها تو را نبینم باربر جواب داد این منصفانه نیست که بروم زیرا شرح زندگی من را شنیدند و من هم باید حق شنیدن سرگذشت هر کدام از اینها را داشته باشم انگاه زاوید دستور داد که باربر در گوشه ای از تالار بنشیند و گوش کند او هم با خیال راحت به کنجی خزید و به تماشا نچست یکی از درویش ها شرح زندگی خود را چنین آغاز کرد سرگذشت نخستین درویش من به پادشاهی بودم و عموی من هم در کشور همسایه سلطنت می‌کرد و پسری داشت همسن من که ما با یکدیگر هم بازی بودیم سال دو سه ماه برای گردش و تفریح نزد پسرعمویم می‌رفتم و این چند سفر موجب شد که بین من و پسرعمویم که اهل کشور خود بود دوستی مستحکمی پدید آید آخرین باری که به دیدن او رفتم جشن بزرگی برپا کرد و مهمانی با داد و بعد از خوردن شام به من گفت تو نزدیک ترین دوست من هستی و میخواهم رازی را به تو بگویم و آن این است که از تاریخ آخرین سفر تو تا به امروز که یک سال میگذارد من به کار مهم دادم و آن کار مهم این است که ساختمانی با شکوهی بنا کردم که اینک به اتمام رسیده است و میتوان در آن زندگی کرد و تمام نیازهای خود را در همانجا برآورده ساخت و هرکس در آن زندگی کند هیچ به دنیای خارج احتیاج نخواهد داشت از من خواست که به اتفاق او به بازدید این بنای کم نزید بروم علاقه و سریمیت بین ما به حد کمال بود و من هم با تقاضای او موافقت کردم و به درخواست او سوگن یاد کردم که درباره این بنا به کسی چیزی نگویم. او مرا نزدیک ساختمان برد و به من گفت تا چند لحظه دیگر به تو خواهم پیوست چیزی نهوزشته بود که پسرعمویم دست در دست دوشیزه زیبا که وجاهت او افسانهای بود نمایان شد. پسرعمویم او را به من معرفی نکرد و من هم دور از نزاکت دونستم که نام او را بپرسم. ما هر نفر دور میز نشستیم و شروع به خوردن شام کردیم و مرتبت جامهای باده را به سلامتی یکدیگر خالی خالی میکردیم. بعد از چند ساعتی پسرعمویم گفت نباید وقت را از دست داد. تو به اتفاقی خانوم به بنایی که ساختم بروید، در آنجا باز است. پس از ورود به آن در وسط آن آرامگاهی می بینید که گمبدی شک و کاملا نمایان است. به درون آن بروید و در آنجا منتظر باشید تا من پس از چند لحظه نزد شما بیایم. من و آن بانوی زیبار راه افتادیم و در پرتوی نور ماهتاب راه خود را بدون زحمت پیدا کردیم و به آنجا رسیدیم. هنوز چند متذکر نگذشته بود که به هم به آنجا رسید و دورچه کوچک آب، تبرزین کوچک دستی و کیسه‌ای هم انباشته از ساروج در دست داشت. پسر با تبرزین کوچک شروع به کندن و باز کردن قبر شد. او تکه پاره‌های ها را برداشت و همه را در گوشه روی هم انباشته کرد. بعد کف آن قبر را شروع به کندن کرد و بعد از مدتی درچه‌ای ظاهر شد و دردچه را بلند کرد. زشته پلکان دیدم که به سردابی منتهی میگردید آنگاه پسرمویم رو به آن خانم زیبا کرد و گفت اینجا همان جاییست که قبلا برای تعریف کرده بودم با شنیدن این سخن بانو از آنجا پایین رفت و به پسرمویم هم, هم او را دنبال کرد بعد پسرمویم از من تشکر کرد و بدرود گفت من فریاد کشیدم پسرمو جان چه کار میکنی؟ کجا میروی؟ من از کار تو سردن نمیآورم. او در فاسخ من گفت، برو خوش باش، تو می دانی که چگونه باید برگردی؟ سخن در ویش که به اینجا رسید، رو به زبیده کرد و گفت، ای بانوی بزرگوار. من ناچار شدم از همون راهی که آمده بودم برگردم و به قصر عمویم پادشاه بروم و بعد از ورود به قصر به خوابگاه خود رفتم و خوابیدم. صبح فردا که آثار مستی از سرم پریده بود، به شب شبه گذشته افتادم و نمی توانستم باور کنم آنچرا که رخ داده بود حقیقت بوده است. ولی بیشتر به خواب رویه شبیه بود تا به حقیقت. بعد از برخاستن از خواب برای حس ظاهر به دیدن شاهزاده به سر خودم.